لا احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على الله الطاهرين على اللهم جميع لله رحمه رحمه رحمه. که در این فایده درج به کار ماه مرحوم صادق و صادق چون دیروز آخر بحث شده مقداری فرم صحبت شد ارسال کردم به گفتم امروز دقیقا راجع به مطالبی که در این فایده خاصم گفتن توضیح و ارائه اجمالی داده بشه توضیح تفصیلی شود تو یک یکیش جای دیگه بختم. پس داریم کشون در پایده هستون قرآن عامه رو ذکر کردن و توضیح دادیم که بعدها اده از رجالیون همین قرآن آمنه رو تبدیل به توصیقات عامه کردن و گفتیم بهتر اینطور فرق بگذاریم از وسط یه حالا فرقیس که به ذهن ما آمده مراد قبول خبر باشه توصیقات آمنه مراد توصیقه باقی باشه اینجوری فرمه که من این دوتا و شواهدی رویشون به عنوان قرآن آمه مختلف فرمانهش نرس کردیم در کتاب های همین شواهد همدت بعضی هم اضافه به عنوان توسیقات آمه اونه حالا متعرض نظر نهایی بشین ارس که میشه اولین قرآنه آمه اصحابه اشماعه در کلمات این به ترکیبیشون شما رو من رو شماره رو که برای شما راحت تر باشه اولی نشون اصحاب اجمال یعنی ولن ولن که اینطوری که خودش باشه ما خودش اولی از چندین توضیحات تو توضیح دادیم که ظاهر عبارت اصحاب اجمال راجع به مقام صفاحت و جلالت شن این افراد است هر وقت به مقام روایت نداره این هم بزرگواری از شخصیت های بزرگواری هستند. این ناظره به مقام و ولذا این عبارت اصحابه اشمان نجوز قرائنه آمه هست نجوز توسیقات آمه به درد حضور مطلب نکنه این نظر خلاصه راجع به اصحابه اشمان امسال صاحب و صاحب ریعتستانی که توصیقات آمه فهمیدن معتقدم که این عبارت رو عبارت از خواب ما رو زمینه بکنیم با عبارت شیخ توسی در عده چون شیخ توصی در عده از کردیم یه عبارتی داره که مشعره بگیمه که از خواب امن کردن به مراسیل و مثانید مثل ابن عبی عمر و سفوان و بزنتی، این این عبارت مرحوم شیخه و غیره منتقاط این غیره همش الَّذین عُرِفُ این عُرِفُ یعنی معروف هم یه دروای اجماعه الَّذین عُرِفُ بَهَنْنَهَمْ لا يَرْغُون و لَا يُرْسِلُون الله عَمَّنْيُو سَبَبِه وقی نظر صاحب وسائل اینه که این عبارت شیخ در قده این تفسیر عبارت اجماعه چون عبارت اصحاب اجما رو در کتاب کشی و وزر جال کشی تنسیسش این مطلب رو هم در عده عوضه این دوتاره که با هم زمینه بکنیم الگزینه عرفو مراده به عرفو یعنی اصحاب اجما پس استدلال به اصحاب اجما محتمیست بر این که عبارت شیخو زمینه بکنیم به دعوای اجما در کتاب کشی با اوشنشتون با هم زمینه بشنیم به این تقدیلی که حالا اگر این مبنا رو قبول کردیم و زمین قبول کردیم انسان اینه که اگر مراسیل این حسابه اجماع رو قبول بکنیم اینجا حسابه اجماع جزای قرائد آمن میشن یعنی هر با مظهوم شیخ اما اگر مسانیلشون هم به همین دلیل قبول کردیم اونجا از بلید توصیقات در میشن دفترانی تفصیل دو تا. اگر مراسیشون رو قبول کردیم از قرائنه عام میشه اگر مصانیدن به همین وجوه که به شیخ فرمازند قبول کردیم جزب فرات جزب به اساس مراسیدشون جزب و مسانیدشون جزب توصيات عامه لكن انتهها هم خیلی مشكله حقی این است که روشن نیست راجع به از خواب اجماع ظاهر عبارت شوارد بوجود صدرن از تمام ناظر مقام فقاقت و جلالت عدمی اونهاست ربکی به مقام در عبارتشون و ما عبارت شیخ در اتفاق و مفهومش واضح نیست شاید مثلا در محیط بغداد در اون زمان عده بین عنوان معروف بوده الان شواهد ما کافی نیست مثلا خود همین صفوان خود بزنکی رو مرمون نجاشی ننوشه از که لاین یعنی بلای رسد در در خصوص ابن عبی عمران به نقطهی که کتاب هاش زیر خاکمون عملت طرف برمراسی دید لذا انصاف هم. این مطلب رو نمیشه قبول کرد. در دوم که مرحوم شیخ مرحوم شیخ خور ابردن از صفحه بعد از اصحاب اجمه کسانی که در شرحه ها آمده که کتاب سنیال حدیثه یا شرحاله نمونه کتابش قریبه به نصدا این قرینه دهمه یه مقدار که خوندیم ما هم شیخ رحمه الله داره و هم نجاشی داره این بلا شما توضیح بود این که کمی درباره اش از این نفری تصحیح کردن ظاهرا شما تلاشی توضیح میدین تصحیح مصحف ما یعنی این اول بار ثابت بشه این فکرمان این اگر فکرمان این ها بود صلیه صلیه صحیح هم نه منو من مطابق با واقع یعنی مطابق با قوانین خود جهان. نه مثلاً می‌دونم باید این بدنبه مثلاً از به چون که یا زوراره متعمد مزارق و زدگان. یا نام این که من ترمیدیم که مثلا خالد جسمیت خدا بود اینا نظر می کنم بزرگوان هستن اگر آرها اشعار بودیم قیاس قیاس نید قیاس نرفتن قیاس نرفتن قیاس نرفتن اشتحاقشون اشتحاق صحیح فقاحتشون فقاحت صحیح من بینه ولی صد روزه ایده عبارت ناظر خب خب دوم از قرآن عامه ایشون کسانی که شیخ یا نجاشی راجب اونها عباراتی دارن که کتابه هاشون معتمده بله این بحث هست آیا این جزء قرائنه آمه یا جزء توسیقات عامه مثلا مرمو استاد در طرح مزید می چون شیعه بوده کتابه ها و تلازم هست بین اعتماد بر کتاب و بساگه لذا این عبارات رو عده قادم جزء توسیقات عامه از دیگر هم مثل مرمون شیخه هرد که اینها جزء قبائه آم هستن البته انصاف قصه اینه که عبارات مختلفه مثلا اگه گفتیم کتابش مثلا معتمده این شاید توصیق به معنی اصطلاحی در نیاد جزء قبائه نامه باشه یک کتابش قابل اعتماده اما مثلا در باب تاتوری ها دوزه و لفو کتب رو کسیره به فقر رواهان رجال الموسوق به همه به روایاته هم. شاید از این عبارت توصیق در بیاد توصیق آم در بیاد. از این عبارت و اون کتب گفته کتب و کسیره و که نعنی رجال محصوب دهیم و در ده روایاته و از که ازدهش هم مرگوم شیخ و هر مثلا مسکونون اله شاید از عبارت مسکونون اله یا اله کتبه در بیاد که توصیق آم باشه پس بنابراین این قرآنه دومی که ایشون فرمودن حرف بلی نیز غالبا به قرآنه آمه میخوره انصافا بعد بعضی شما جز توصیحات عامه باشه و که اونی که مشکل کار تشخیص خارجیه یعنی این مشکل صغروی داره این الان مشکل صغروی مثلا ما که ببایدی از کتاب تاثوری دیدیم این که حتما این کتابهای که مقوم شه فرموده یا از کتابی مثلا همار نموزهای یا مثلا تلحطه نزه احرازش در همه موارد روشن نیست بعضی از موارد شد بسیم احراز بکنیم با نبودن مسادر عصی الان احرازش روشن نیست از جمله قرائنی که ایشان با این دو بوم بود قرائن سوم، قرائن آمه کسانی رو که شیخ و نجاشی راجع به اونها گفتن اصل اصلان ایشان این عنوان رو قرار داده از کردیم ادهی همتی ما بعد گفتن این دو هر کسی که گفتن لحوه اصل و اگر اون شرط ها رو از مجبول هم رو روید قبول بشه. این رو توضیح دادیم و بله، بیان شد سابقا آیا این مطلب درست جز قراره نه آمه یا توصیحات آمه خب این هم اشکال کبروی داره هم اشکال صغربی داره اشکال کبروی نیه که کلمه لحوه اصل هنوز خیلی واضح نیست که مراد قدما از کلمه اصل چیه؟ يعني روشن و روشن مثلا گفتن اصل کتاب هایی بوده که فقط توش روایت بوده کلام راوی نبوده با بندی نبوده مصنف اون که با بندی شده مثلا مصنف مصنفات دیگه مصنفات مثلا کتاب الصلاه کتاب وضو این هاست بوده اما اگر مجرد روایت بوده این اصله اگر ما اصل این باشیم قرن امام هیچ واسطه توثیقا کتابی بدون اصل واقعی در ذمه ما نرفتن اصل یه توش کلام غیره ما نیست همیش رو بارده اما این ها سه غز دلارت میکنه. کنه انصافا اگر معنای اصل این باشه دلارتی بر قراره نامنه نمی کنه چیز بر اگر ما مر... بله اگر مراده از اصل یعنی کتابی سه طلقیه به قبول شده اصلی ای این معنام مثلا لبو که کتاب روبما ساعد دو پر یعنی عصر یه احتمال که نگفتن ما احتمال بده چون کلمه اصل به شواهد ما از قرن سوم فروش شده تقریبا از زمان امام ابوزاده عمرو احتمال این رو داریم چون از همین زمان هم اهل سنت تحقیق صحیح دارن صحیح بخاری ها هم بعد از این تاریخ احتمال داریم که کلمه از در اصحاب ما مثل صحیح در اهل سنت باشه الا اینکه سقی اهل سنت به راوی اصلی شما به لحاظت کتابه این بحث فهرستیس به اصطلاح رنگه روشنی شد برا نه دیگه بود. ولی ازا اصلی نیگه در تو اصل این کتابون سبیل کتابون محبول مثل قرآن در تو اصلی این کتابش معقوله اگر معنی اصل این باشه نبوسیم یقینا اگر معنی اصل ببینم عرف که میشه دلار ما من طنجی گمان من نگا هر که نه احتمال داده باشه این احتمال ما با مراجعی که با شواهد تاریخی داریم از حدود سالهای 200 این کار شروع میشه توصیف به اصل چون اگر کلمه اصل اسم کتاب نبوده اسمی نبوده که مصنف برای کتاب گذاشته دهقت می‌دونم یه عنوان بوده که بعدی‌ها داده دقت بکنه حالا بعدی‌ها چرا اینا میگن گفتن اصل این هنوز برای ما روشن نیست تو 12 هست احتمالاً حتما نمیخوام وارد این بحث بشم. من این مقدمات رجاله این تقریبا هر تصند کو کتاب و فلان رو در 12 که احتمالاً من 12 تا 14 تا احتمال دیگه نمیخوام حالا خودم یکیشون احتمالات دیگه بکنم میخوام بگم اگر مراد از اعصم این معنا باشه این معنایی که من که معتمد باشه معنای عرف معصم باشه بله جزء قرائن عامه میشه. واضا جزء توصیفات عامه نمیشه. اگر معنای اصل این باشه که این هم پیش ما روشن نیست، اگر این باشه این معناش اینه که بله در به اصطلاح جزء قرائن عامه. اگر کسی سؤال اصل باشه جزء در این حساباً ثابت نیست خود این مطلب روشن. این بحث کبرویش، بحث سقراطیش هم خب مثلا علی بن اسوار لا و الی از نبی هم زیب آن لو اصلا آیین این واجدی که الان داری می‌ده اصلش رو از کتاب دیگری که روایت شده خواهیشین آن پس این مطلب این داری سوم دوم بود سوم این داری سومی که ایشون نقل کرده این هم روشن نیست نه به دهاده روشنه نه به دهاده و محسوسن اگر هم در پس ثابت بشه بیشتر جنبه برای نام یه توصیل که آم میز. حالا اونم که ازگفت بعد ایشون عبارتی و قرینه دیگه شیخ اوورده که طائفه به اخبار فتحیه و اخبار هفتر نقیاس و اینا عمل کردن اینم به دو قراره ایشون قرار کرده. این عبارت راست، عبارت افتیاج به طور ما نخوندیم چون برای در بحث سکونی یکی در بحث اثر هست توضیح بده اجمالاً نشون میده که عده‌ای از مخالفین رو شیخ سر نمی‌دونه و اصحاب به خاطر وثاقت اونها عمل کردن واسه خودی این مطلب روشن روشن نیست ان شاءالله اینجوری ای دیگه توضیحش میدیم بله جای اینها اینا نیست بله امم بعد اینکه درنه 4 قوانین شورایم رو افرادی هستن که آینه اونها رو توصیف کردن مثلا امیرالمومنین توصیف کرده یا و کلا بوده و جهلی هم هر کسی که از آینه توصیف کرده این جزو قوانین عامه است یا جزو توصیفات عامه انصافا هر دو واجبه نیستن که یکیش جزو قوانین عامه بوده اگر اینا فهمیدن که ایشان سر رأس سیاسی بحثی بدیگه این اعظم و شعلان از انسانی که امام او رو توصیف کرده وجود داره اما اگر این انسان از یک انسان مجهول نقل کرد ان صادر بگیم چون امام گفت این سر پس اون مجبور هم توصیف بشه یا کل خبرهای ایشان توصیف بشه استفاده از این مطلبی بسیار بسیار مشکل و اما مسئله وکالت همون بحثم عرض بحث هم عارضیه منظور اون توی بحث وکالت رو داره بسته تو سر آدمه مرا دارم تو مقدماتی مواجه. آیا وقایی مسلط نیستم به ملاقات بین وکالت و لسامل؟ یعنی شنیدم انسان ممکن است یک پرداخت فصلی هم وکیل بکنه برای کارهایی که داره. و خدا روشی گذاشته برای وقایعی که ماش فاصله رو وکیل می‌کنیم که ممکن است ما خود وکیل. حالا یا که بحث وکالت یک بحث باز داره، یک بحث از افراد که از آن موصوف هستند و وکلا یه واضحه نیست من دیگه وارد بحث تاریخی نمیخوام بشم فقط اشاره میکنه چون مثلا یه روایت ضعیفی در کتاب کشی آمده هر طور که در کتاب کافی باشه روات ضعیف باشه یا مثلا شعر در کتاب خود مثلا غیبت اس مرده یک دلیل روشنی بر وکالت ما ندارید در خیلی‌ها این یک مسئله است که من اصلا نمیخوام اینجا وارد سهرایات بشم یه سهرآ داره که انصافا خب کارش مشکل ادهی از این افرادی که محصول شده در کلمات رجالی متأخر ما به عنوان وکی وکالت اونها خیلی روشن نیست این یک و اما بحث کمرویش بحث کمرویش داره مراد مرگ مستانی این؟ باید اینطور توضیح بشه ببینید ما در وقت اینطور توضیح بیدیم وکی به ما وکی قبل شجه یعنی وکالت مسلزه و حجیت این قائده از یعنی مثل قاضی ما در وقت حجیت خبر والی قاضی به ماه و قاضی قولش حجیته والی به ماه و والی قولش حجیته اما در محدوده یه در محدوده وکالت یعنی ما در خبر وکیل یا در خبر والی به دنبال رسوم نیستیم به قبل بپرمون یک آهایی مثلا وکیل از در اخذ مال شما ما به دنبال این نیستیم که آیا مثلا رسوب پیدا بکنیم که این مثلا شما الان گفتیین وکیل دقیقا مثلا هر تصرفی بکنه درست یا نه ما وظیفه داریم گفتیین حال وکیل بنوها بدین اون بقیهش برمیگرده به اون شخص به شخص موکل پس بحث در این نیست وکیل از جمله وکالت از جمله اموری که از بحث حجیت خبر خارجه از بحث حجج خارج اون به عنوانه قوله فجته میخواد مفید وصول باشه یا میخواد مفید وصول بحث حجج خبر واحد در جایی است که خبر شخص طریق طرز هیچ عنوان دیگه همراهش نباشه ولی اگه کسی قاضی سو اون قاضی قول. اون خبر واحد حساب میکنه، کنه چون قاضی نوصل به رفع اختلاف اگر چیزی حکم کرد م اگر اینکه تحتاً باز س باش شما دیگری. نمیخواد شما به قول قاضی ووسپ پیدا بکنه. ریم پیش قاضی گفت کرد. بیا من ووسوب پیدا نکردم به حرف شما لذا قول شما بیت نیست. اگر این شد خلاف حل نمیشه همجون میگوونه. قاضی ح میکنه که با من وسوب پیدا نکردم این طرف به وسوب پیدا نکردم. اون طرف وب لذا بنابراین اینه که قاضی قول شدجر این از بحث خبروارد نیست. از بابا هجیت فرق با هم میزیدن خلق نشو با هم هر هجیت یک حساب هجیت خلال واحد و نظام مفسرن بحثیم هجیت که جایی که شنش طریقیت صرفه او درقص اصلا هجیت در اون باید به چه معناه باشه اصلا مرموهای نایمی و به بفاغنده اون مرموهای استار اونو تقریم کشف میدونن چون یک کاشف است هجیت معناه است که کاشف تانقراش این اصلا خودش یک بحث خاص خودشون داری ویقه حالت جزه است که قول وکیل در این میگه این مطلب من میگن چون این نقطه است که بعد در بحث روایات باز روایت متعدد داشتی شد اینشالله تعالی یک این روایت است که علا عمری ببنه سغطان فست معله هما و عطه هما فه انه هما سغطان المعمونان معمونان. یا فست معله و عطه او فه انه ها المعمون خب خیلی ها این حدیث همست رو کنم در وجه در خبر سره مختینی حدیث شون صحیح هست و چه این اشترانو من این بیشتر به اون حدیث لا اوزده در اهده به موالینا تشکیقی ما یقوی هن ناسقا اگر سره نقوی کرد تشکیق نکنیم ایشون فرمدن که معناه با هم اضاله شکه تصمیم کشیم همست رو می کنم به این حدیث با ما این آقا اونجا توضیح خواهیم داده هرزا حدیث موردش به قالت. اشتباه شده که هر حدیثی هم فس و لذا با فس معله و ما تو خبر واحد حتی آقا نداریم که تو این از نه اون بحث دیگه میخواده ببینید وکیم غالو چجه و لذا اون حدیثم احسرین لاغوز لحظ من مبالینا فتشفی فیما یرگی احنا فقات اونا نانیم سهی جشو بگه کاشی بگه یه سرنا نحملو الیه. نحملو الیه و نحملو ایابا این نحملو ایابا علیه مکالته نفاقض سرنا مکالته باعث شده کادر یک بحثه بحثو به خاطر سره بحث هم اونجا به تدریمی به این امری که سرش هر دو وکیل هم امری از امام هادی امری از سرش امام معصکل در این ما امام هادی را به شما اینجور و امام معصکل را به شما به خاطر اینجور بگو یعنی که فرود چون عمل بکنی چون وکیل ماست و اطع این اتعه ها معلوم مقام بکنه میده بحث مجرد روایت نیست به شما نمیگن تست معل زرار و اتعه ها زرارتون وکی راویه در روایت نمیگن تست معل و, تس و اتعه ها رو به وکیل میگن حجیت قول وکی قطعی نمیخواد دنبال وصوب نیست. میخواد وصوب پیدا بهش مخواد وصوب پیدا پس احتمالا مراد و استاد این بوده که وقتی کسی وکیل شد از طرف امام در حدود وکالت مرفق قبول و این سخت یعنی دنبال بساقت هم نیستیم چون وکیله بله بمثیه است که اگر این آیه که وکیل یه خبر نفقت به عنوان ناقل خبر آیا اون وکالت معنیش اینه که خبر سخت خبر میشه شخص خود این رو باید وقت گردید چیم کنم عرض بکنم ولذا مثلا آقا کنیم کنیم وکیر بکنید اشخاص رو در شراح اموال کنیم مثلا گروه بر ما سیبزونی پیاد بکنیم اینسا کنیم که شخصا فاسقیم وکیر بکنیم برای خریدن املا وکیر در عبارات که جو برم برمونستاده وکیر در عبارات علمای ما مراد لکالت در طبیق احکامه این مصفه به دینیه مراد نیست که وکالت در خیدمی چیز این فیات موزن به خود درو مراد وکالت در این امور نیست این اولا لیکن این نوزه هست کلام شخص وکی در محدوده وکالت به خصوص حجته میخواد خبر واحد حجت باشه مخواد نباشه رب توی به اون هم داره, هم داره. این نمال کلام در غیر محدوده وکالت به عنوان خبر به عنوان خبر طریق بین شما و واقع به این عنوان این ملازمه داری یا نداری پس نقطه فنگی این است که اینکه که مرموم شیخ و و دیگران ادهی از افراد وکالت رو از توسیقات و گرفتن هستم در کتاب استاد آمون در کتاب آمونی زیادی آمد این مطلب رو. استاد چون در ممکن دست هستیتون باشه هست منابراین ولیکن این مطلب درست تلازم نیست لیکن بعید نیست درست در مقام ثبوت مطلب همینطوره بعید نیست تو مقام اثبات چون مقام امامت مخصوصان که شما یک منصب الهیست غیرت مرجعیت غیرتون سلطان غیرتون خلیفه از غیرتون اومین حرفی که بعید نیست که احمد علیه مسلام لاعقل تو مقام اثبات و مراعات حال آمه مردم حتی در امور عادی هم دیگه این حد در اغلب فرد و آدم سیع و سالبی رو بگذارن برای وکالت حتی در بیسترام خیلن سیزمی پیاز مثلا چون وقتی در قرف شیعه گفته میشه این وکیل امام خودش ایک عنوان داره به امام رو هم دسته خلافایی بنی عباس بنی عملی که شیعه حساب میکنه کنه منصور من الله و عهد من الله اون از نظر واقعی و ثبوتی چاید همینطور باشه اون بحثی که ما الان تلازم و این رو بیم رو جیب لیکن در مقام اثبات این بئیر نیست که ما حتی برای امور عرفی هم اگر وکیری رو تعیین می کردن احساس... لاقل جنبه احساسی مردم رو راهات حالا اون بحث علمی شوی خودش و لذا ذهن ما لاقل تو مقام اثبات تلازم بین وکالت و رساقت ثابته به خاطر وکالت از احل فیت این خصوصیه ثابت اندری همین اون نکته است شما را که یه مرجع یه وکیل قرارداد برای قرض اموال اگر این شخص اومد یه حدیث واسه اون نقل این قرض اموال رفت نقل حدیث صدر اون یه مقامی نه چرا چیزی داره در قرض اموال شما دنبال غسوق نیستی اما تو نقل حدیث مثلا بر مبنای ادامو حجزه خبر دنبال غسوق هستی یا دنبال دساقت هستی پس بنابراین راجع به کار در خوب دقت بفرمایید اگر ما باشیم و نکته فنی همین یعنی وکالت، حجیت رو اثبات میکنه در محدوده وکالت و دنبال حجیت و دنبال وسوخ هم نیستیم، دنبال اطمینان و وسوخ و او و علم و دنبال اینا هم نیستی. اما این ربطی به مقام خبر نداره حالا چی میخواد به اصطلاح وکیلی در امور مالی باشه و رکیلی در امور دینی باشه و که انصافم به لحاظه عرفی و به احساسی شدار این رفت و دراره و نمیشه چه مطلبی بود بعد اینشون در قرن 5 ایده از افرادی که به اصطلاح اینها 25% توسط ائمه این فوقشوال توسط ائمه بلا اشکا حد اکثر, اکثر اکثرش است این که اینها سررسان جای و هستند انصافا هم بزرگوار هستند اما دیگه این معناه شیست که یک از یک امسان مجهولی نقل کرده ما به خاطر توصیه امام بیدیم این روایت قبول میکنیم نجز به قرائن آمد و نجز به توصیقات آمد اما آخر مطلب از کمال دی دین است ما رو اسم برده که اینا تشبه به خدمت بقیه الله پیدا کردن برداد کی کوفه که احواز که احل قوم که احل حمدان این که هیچی گرفتی نه به قرائن آمد داره این هم قرینه پنجم قرینه شیش رو کلام مرضوم شهید ثانی در کتاب به اصطلاح درایه که مشایخ اجازه مستقنی از توصیر هم که این هرسی کلمه آی خویی هم و ایشون قبول نفرم من مشایخ اجازه هم توصیر میخوام هم با شهید ثانیه مشایخ حدیث بزرگان حدیث انصافا همینی که به اونهای مراجعه میکنه و تحمل حدیث میکنن مستقنی از توصیقن مگر اینکه که بشه که فلانی ازش اقضا حدیث میشود البته از بود مثلا حدیثش کذا بود و الان انصافا با سخوت از مذهب اونها اگر ثابت بشه که طرف جزوی مشایخ حدیثه این مستقنی از توصیقه و لیکن مشکل بزرگ در این مطلبی که هست این توصیف توصیقات و نه جزو قرآن آممه جزو میشه جزو توسیقات آممه هست لیکن اشکالش صغرقیه. اشکال صغربیش خیلی حقیه دقت بکنید الان در کتاب رجالی ما مثلا صدوق صدوق از نزدیک دیویسو چه نفر نهاره کرده مجموعه مشاقه صدور حالا من دیویسو بیش از دیویسو چهتا چون بعدش حق از این دیویسو چهتا هفت ده شغلی یه هفتش تا دیگرم میشه منان اینا توصیح کرد با شوالی توصیح خب ببینید مثلا 14 تا 15 دا. از 24 نسبت خیلی فرقه زیاده و اینا کسانی هستن که بعدشون حتی اسمشون رو ما نمیدونیم نهی که حالا تو بسانه گاه اوقات در کتاب اعمالی و دیگران صدوق، سنده هایی داره خود مثلا از استاد شروعه تا امام صادق ما صدوق و امام صادق میشناسین. از اول سند تا آخر تا کلا نمیشناسین. هیچ وقت نمیشناسین. یعنی به این معنا که حتی اسم این هم کتب الشیعه نمیانده. حتی اسم مثلا قائده، وجود خارجی است که اگر ما نبود کلالاتشان صدوق از نظر محدثوبه اینطور سنن را میگن میگن همه من البعد همه اون چیز عجيب یعنی از اول تن از استاد تن رو بگیریم تا اون راوی از امام ساده نه در مسادر ما احتمال هم سنری باشن مثل محمد ابن علی شاه به مرده روز نه ما سوشیعه داره اینا سنی ها اسمشو دارن احتمال هم امام جماعتی بوده شیخ بوده در مرد مثلا شیخ صدوق بهشون رسیده احادیث اسمانیز عجیبه ای داره هیچ اینا نمیشنسیم کلن نمیشنسیم داره, داره که. بگیم به مجرد نقل صدوق اینها جزه مشایخ هم این روی کمی شبه داره انصاف شبه داره حتی به نظر ما صدوق از, از مشایخ قومتشو نقل میکنه به ذهنی ها طلبه های عادی بودن بله اتصال شنند میخواد به ذهنی های ها جزه مشایخ اصماشونو وضع شد سنی که زیاد داره اصلا ما احتمال میدیم این دیع بزرگان اصحاب ما وقتی که می‌خواستن سعی بخاری رو بنوسن، پیش اینمیشن نمی‌یاسته. چون اونا می‌خواستن یه شکلی پیدا میکنن تراجم بزرگو متکثر بکنن. هدفشون اتصال سند بود. نه اینکه هدفشون این بود که جزء مثلا سلسله محدثی نهای شیخ خراب بگیرن. علی ایها به ذهن ما میرسه که صدوق در کاراره خودش بیشتر هدف اتصال سند داره نه اعتماد بر مشایخش. چه, چه در شیعه است در سنی؟ بله در کتاب صدو فرزی هم گفتن چه ایسی گفته رضی الله عنه علامت توصیه اونجا که نگفته نم اونجایی که ما فهمیدیم چه حالا از عباد و صدو اولیشون رضی الله عنه را فقط برای اول صندقی استادش نموی کنن برای بقیه سند نمیگه. و تا اونجایی که من فهمیده رضی الله عنه اشاره می که این استاد ما شیعه اگر رضی الله عنه نگو بهتمنه سنیه زارج خیلی از تشعیه و ما چیزی خیلی نفرمیدیم اما اینکه این صغر از اجلا از مشایخه همچه هنکی رو ما از عبارت صدوق در فرق بین شیعه و سنی در مشایخ صدوق اینجوریه اگر نگو رضی الله هم احتمالا سنیه اگر رضی الله هم گم این اینجایی که ما برمید پس نهره نه تحضیل گاهی داره یعنی شیخ توصی در امالیوین اینها داره از مشاهده اهل سنت داره <تصفح> به نظر من این ها میخواستم عجله اهل سنت دارن به نظر من این طور نیام مثلا شما بخواهی نروه کنیم برید آهره و از مشاهده الهره یه شیخ سنتی داره میمز تا بخاری همین داری نروه کنیم ظاهر شواهد اینطوره یعنی اونی که ما الان می‌بینیم در اسانید اینطوره افاده مشهوده که اون فرد عادیه سنی این اون مشهور سفر شیخ مر و فرقانو خیلی جا سفر رفتش این روزی ده فائده خصوم و خلاصه نظر که آیا بعضی از و ترااین عام من بعضی جز و فصیحات عام البته غیر از هست من چون این توارضی داره من اکثرن بتون اخباری ها که این کار رو ترکن انصافا یه ولوله‌ای در شی انداختن حرکت اغلی انداخته اصولی هم دنبال اینا آهان و خیلی سر رجالی روش پیدا کردن انصافا با این مناقشات که اخباری کردن مثل بعدی بهانه‌ای به ما خیلی مباحث رجالیشون رو روش دادن که یواشاش ان شاءالله خواهر هم نشون این مثلا الان دیدین تمام این موارد و ایشون روز قرائن و اماره غیر از اینا هم اضافه شده جزء توصیات عام مرز شده و نظر نهایی راجی به این مطلب حدود 6 7 مورد که ایشون گفت عرض کردن کدوم میگیش فرعش درسته کدومش کم درست نیست در فائده 8 این فائده رو من عمدل میخونم چون نکته لطیفی داره چون ما در خلال بحث ها همیشه میگفتیم که مثلا قدما یا مثلا, مثلا احلقا و خرائن بودن کمتر شده بود این قرائن رو به نهر جزئی نام بدنیم الان به این مناسبت پایده هشتومه مرغوم شیخ و هر. ما هدفمون فقط عباس شیخ نیست. در این حال مباحث مبارس رجالی و تاریخ حدیث شیعه و رجال شیعه هم برای هی روشن ایشون قرائن یک یک اسم برده اون به طور کلی بود یعنی توی کتاب قرینه عامه اون حالا قرائن خاصل اصطلاح تفصیلی این قرانه ایشون قرائن اسم برده و درجات منها منها آورده من چون نسخه خودم شماره گذاری کردم دیروز ارقم حدود 20 سال باعث شماره گذاری 21 بعد نوشته قرائن دیگه هم هست مجموعه قرائنی که ما به میهور در اینجا دست بندی کرده 21 قرینه و اجمالا مطلب ایشون درسته انصافه ها. این قرائن و این قرائن در میان قدم های اصحاب بوده راست این مطلب اجمالا درسته و هم مطالب ایسی قابل تعماله حالا من شاید به اندازه ای که مناسب با بحثه چون من ممكن در خیلال بحثه کبروارد انشاءالله تعالی بیشتر را زیبی این مطالب صحبت بکنیم یه سهر اصوار هم قرائنشون رو حرض میکنیم هم به اصطلاح، اون نظر نهایی یکیش کان راوی سقتن یعمن و من هلکیز و خود وصاقت راوی خب ایشون بگه که این از قرنه واضح هستی از دوز قراهن راستان هست دوز احلای قراهن و ما از کردیم خوب دقیقه از همین جایی آشاش بحث بود جده است که ما اینجور مثلت داریم وصاقت مثلا فرض کنید ما یک میار اون کیفی رو تبدیل به میار کمی بکنیم بگیم خبری در نزده اغلا حجته که 90 درصد وصوب بیاره حالا یک شواهی دیگاه درش باشی این ها هم ما این جهد کیفی رو تبدیل به کمی میکنی من این که ماضح تر باشیم یه خبر باید پیش اغلا داره 90 درصد درجه وصوب باشه چرا میگه ناید درصد؟ چون ممکنه 10 درصد با اغلا حساب نتونه به حساب شخص بگذارن اون که ده درصد برش حسوق بداره که برامه نشه اون ده درصد رو کنار بذاریم خود ده قطع 10 ده درصد کنار یعنی این فقیل برش حسوق سد درصد آمده نمت درصدش اغلایی باشه ده درصد ماده چخص باشه پس ده درصد رو گذاشیم کنار شد چقدر نمت درصد ما اگر بنا رو به این بگذاریم که معیار قبول خبر یک حسوق اغلایی نه شخصی. وصول و قغلایه 90 درصدی بیاره اون دقیق از طرف دیگه اگر راوی سهل باشه ممکنه جلالت شهنشو و ساقت جوری باشه که برای ما 90 درصد پیدا بشه. دقیق و ساقت راوی برای ما 90 درصد پیدا باشه خب اونجا خبر هنجا دیگه اون خبر هنجا درست شد اما ممکنه راوی باییه و ساقت داره ما خودمون شواهد دیدیم پس علما عمل نکردن به حدیث 90 درصد پیدا نشه چند درصد پیدا شد 60 درصد 70 درصد بفت حالا که کمتر از 90 درصد شد شما چطور این رو به 90 درصد میرسلیم نکته فنی اینجاست اون که تیکی میگه خبرستقه حجته همینجا رو تابض بکنیم درستان خیلی روشن نکته و باید دیگه یک نوثه آمد یا شاره آمد یا اوحلا آمد آمد گفت آقا این 70 درصد رو 90 درصد تمام نوثه ذریسه بود چه خبره چه ایجاز اگر به طاقت راوی برای شما 70 درصد آورد خوب حساب بکنی خب این 90 درصد نشد دیگه آن خو این مسربن به اینکه سیره اوحلا برنجاری و از اینجا مناقشه این راحت خیلی توی مناقشه رو پیدا بکنه یعنی سیله و قغلات که درصد و 90% حساب بکنه این همید شما روزه قغلاتی قغلاتی که قغلاتی که نیست که همین شیخ باشن یا عرصو باشن از مردم آدی قغلاتی مرا منتظر. آیا این مطلب همینطوره این نکته پن میدینه احسن آخرت صحبت اینه که اگر این وساقت نبود 20 درصد درآمد پیدا می‌شد ما با به جهت وساقت شد 70 درصد چون دیدیم اصحاب ما ایراد کردن کلینی ایراد کرده شیخ صدوق ایراد کرده بغرش این دوسی آورده فتوا از طرفهای ما فقط نگو احرام قبل از میقات کلهی ایراد کرده صدوق صندوق ایراد کرده و فقهای قبل از شیخ ایراد کردن فتنه آوردن خب این برما هفتاد درصد پیدا میشه به خاطر ساقت اگر سندشم مقتبل باشه تا میشه هفتاد درصد اگر سند هم سه نباشه میشه بید درصد میشه سی درصد بفتن ایشون میگه سیره هست ایشون باید این سیره رو اثبات بکنه به خاطر ساقت در بازار اغلا خودش هفتاد درصده اغلا به خاطر دومرتر ساقت بکنش نارد درصد اگر این وساقت نبود خبر خبردری بود سی درصد بود چه درصد بود چون وساقت آمد شد هفتا درصد و نظام راه صحیح همون راهیست که مثلا از سنت رفتن یا ادهی از علمای ما مثلا فس ماله و اتو ناییم یه امام فرموله به ثقه عمله کن فیما یروی انا ثقات رو مثلا فی انهو ثقه طال امین راه درست برای یعنی باید شاره بیاید یک تصرف کنه بگه هفتا درستان نبردرستان این نقطه فندی رو کشت بکنه من چون قبر خبر بسید های نکات رو یه باید اون نقطه فندی حجیت تعبدی خبر سقه اینجاست پس بنابراین این در این که به ساقت خودشکی از قرآنه بسیار واضحه بحث نیست می‌شه بزن فردا ان شاء الله